بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلين و و صحبیه اجمعین اما بعد ما چندی قبل فشار ماه پیش ادامه بحث قصص انبیاء رو داشتیم بعد از مدتی متوقف شدیم الان هفته یک بار در همین شنبه در بحث سیرت نبوی ان شاء الله ما خواهیم داشت در تکمله در ادامه بحث سیرت انبیاء سیرت محمد صلی الله علیه و السلام را واسط این ماه ربیع الاول نزدیک روزا سریع سفری میشه هر سال و هر روز چش به هم زدن داره میره یکی از نشانه های آخر زمانه که رسول الله صلی الله علیه و السلام میفرمایه که نشانه های آخر زمان اینه که روزها به هم نزدیک میشن و بازارها هم به هم نزدیک میشن این از نشانه های قیامت و نشانه های نزدیک شدن برپاه شدن قیامت هست مبحث سیره اتون اون چیزی که ما باید بهش توجه داشته باشیم الان بحثمونم فکر نکنم بیشتر از دحریقه طول بکشه بحث سخرانه نیست کلاس هم نیست یک تذکراتی هست یک مراجعی هست دوری هست در سیرت مصطفى اون کسی که از خودمون بیشتر دوستش داریم فقط مر کسانی که وقت ندارن میتونن نجازه بگیرن اون خیلی مباحثی که در بحث سیرت میشه همه میدونن حالا ما فقط از باب تذکر از باب حب من در رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست داریم که به تکرار بشن از بحث اوصافش چیکار کردن اصحابش چیکار کردن و چطور به ما رسوندن چطور زندگی کردن چطور در سختی‌ها تحمل کردن تا ما هم مثل ما تحمل بکنیم و بتونیم زندگی خوب داشته باشیم اونطور که خداوند راضی هستن و اونطور که خداوند میخواهند چون رسول الله الگوست رسول الله برای الگویف فرستاده شده رسول الله بهترین بشره رسول الله بهترین خلق خداونده بهترین پیامبران خداونده و خداوند درباره رسالتش و نوبتش اینیم میگوید الله اعلم حيث يجعل رسالته خداوند داناتر از این که یا اینکه این که رسالتش نبوتش رس نبوتش رو ارکی بگذاره و در حدیثی در صحیح بخاری داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایان ان الله استفا کنانه من ولد اسماعیل که خداوند استفاء میکنه انتخاب میکنه از فرزندان اسماعیل کنانه از کنانه قریش رو انتخاب میکنه و از پرش بنی هاشم را انتخاب میکنه و من را از بنی هاشم انتخاب میکنه این حدیث برای ما دو تا قائده داره طاعده اول این که رسول الله انتخاب شده هست رسول الله بهترین بشر هست انتخاب شده خداونده یک چیزی دیگری که میتونم، میتونیم از این استفاده بکنیم این که این قومی که رسول الله درش مبعوث شدن بهترین اقوامن در مقابل اقوام دیگه بحث عربه نه که لما بخوام بخوام بعضیان میگن شما تعصب عربیت خودتون دارید، بحث تعصب عربیت نیست، تعصب اسلامه. خداوند از میان تمامی بشر رسول الله را از عرب انتخاب می‌کنه. حتما عرب یک برتری داشتن در مقابل امت‌های دیگر که خداوند انتخاب می‌کنه. بعد گفتن به عرب، بعد گفتن به اسلام، بعد گفتن به رسول الله. چون خداوند انتخاب کرده به نسبه همین حدیث: ان الله اصطفى ما داریم بدی به اختیار و انتخاب خداوند میگیم. خیلی باید متوجه به حرف زدنمون، گفته هامون باشیم، زبانمون کج نره به اینکه بدگویی دین خدایا اون اشخاصی که خداوند انتخابشون کرده، شک درش نیست. تواله و دستشیم همه جا هست. ما نمیگیم که عرب ها همشون خوبن. که جنس عرب اونطوره که علمای اهلسانت اجماع دارن جنس عرب به نصد این حدیث از دیگر اجناس بهترن نه به خاطر ریختشون زیباییشون نه به خاطر نزدیک بودن به حسرت اون طوری که آدم روش خلقت شده بود به خاطر نزدیکیشون به آدم علیه السلام و به انبیای خداوند به فرزندان سل اسماعیل علیه السلام و به ابراهیم تا که به نوش و آدم برسه دینشون کمتر کت شده بود نزدیکترین اشخاص هرچند که گبراهی هاشون سیاد بود ما قبل از بحث نبوت نگاه بکنیم می‌بینیم شرک و بودپرستی و مردپرستی و دوری از خدا و گناه و نمیدونم بال به رهن کردن همه با مباحث داشتیم زن می اومد لخت و به رهن می‌کرد. خدا باید دینش رو حفظ بکنه خدا نمیخواد بندگان کج برن از لوازم حفظ انسانیت، حفظ آدم و بطریات این که خداوند پیامبران رو فرستاده. دین بدون پیامبر دین نیست. انسانیت دین حیوانیت است. انسان از اون انسانیتش خارج میشه اگر پیامبر نبود ما الان حیوم از حیوانم بدتر بودیم. پس خداوند پیامبران رو فرستاد که ما رو نجات بده. این یک مبحث یکی از مباحث مهمی هم که خاص در ضمن بحث سیرت این مسئله باعث نزد به نظرمون باشه. هر کی هر کی گفت قابل قبول نیست هر چند خوب بگه هر خوبی قابل قبول نیست الا اون خوبی که ما نسبت بدیم به خداوند بس پیامبر اقوال پیامبر الا هر چه هر چقدر گفته خوب باشه ما نمیتونیم به رسول الله نسبت بدیم مثلا به فرض بعضی هم میگن بحث مثلا درباره مثلا میخوان تشویق بکنن برای طلب علم و طلب نمیدونم برای درخوندن که میگن که مثلا به اگر مثل مثلا می‌تونن هم بره مثلا بر اساس احادیث در این باب و این زمینه زیاد الان نقل می‌کنن بعدا نسبت مینن به رسول مثل مهمی که هست در علم حدیث در علم حدیث نبوی اینه که ما با دقت داشته باشیم از کجا از چه مصدری از, از کی نقل میکنیم این خیلی مهمه برای ما در سیرت نبوی در وقت پیامبر ما الله مهمه که ما باید بدونی از کجا اومده به خاطر همینه که امام بخاری یکی از بزرگترین علمای تابعین میگه لما وقعت الفتنه قالتم لنا رجالكم وقت كفتنا افطر عثمان رضي الله عنه شده گفت گفتن کی رجالتون راویانتون الا به بگی کی عقیق شنیده؟ همین طور شنیدی نید یانا همین لفظ هست یانا و این چیزی که خدا در قرآن از ما فاصله این جاءکم فصيق بنبا اگر فصيق اومد خبری آورد براتون متبین چه کجا هست چی گفته؟ در کتاب آمده: "سند استهورا، وقت دقیق باشین روی دین. كل حت و برهانکم این صادقین. روز قیامت ما سوال میشیم. برهانتون چیه؟ دلیلتون چیه؟ مدرکتون چیه؟ ما باید مدرک داشته باشیم. همینجوری نشسونیم به رسولمون صلی الله علیه و سلم کسی که از خودش صحبت نمی کنه، بلکه انه لا ینتقن ها و هو الا از خودش صحبت نمی کنه، بلکه از طرف ما صحبت میکنه و هیچ از طرف ما خیلی مبحث مهمیه مسئله صوم این که خداوند برای حفظ ما برای که ما نجات پیدا بکنیم راه را راست و صراط مستقیم پیدا کنیم باید از دینش حفظ بکنه از اون پیامی که پیامبران اووردن حفظ بکنه خودش باید تعهد به عهده بگیره لازمه حفظ انسانیت حفظ دینه که خداوند خودش بیاد حفظ بکنه ما میبینیم در قصد انبیاء خوندیم ابراهیم نوش میاد دین ها منحرف میشه بسیار بودپرستی بیرد اول شیطان میاد گلیشون میزنی فریبیشون میزنی نه اینها اشخاص صالحی بودن شما ناپاکید و فلانی و بیاد واسطه قرار بیدید کم کم کم کم اون اشخاصو رو پس باید دین حب بشه چون آخرین پیانبرانه دیگه پیامبری نخواهد اومد به خاطر همین اینه که خداوند میگه ان نحنه نزلنا الذکر و انا له لحافظون ما ذکر فرود آوردیم وحکیب القران را فرستادیم و ما خودمون رو حس میکنید خداوند تعهد را بر خودش گذاشته نیازی به ما نیست ما یک وسیله بیشتری و از لازمه حفظ قران حفظ سنت نبویه چرا دلیل دارید شما از قرآن دلیل داری که سنت باید حفظ بشه بلی دلیل درین خداوند در قرآن چی میفرمایند وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. ما نازل کردین تا اینکه بیان بکنی شرحش بدی آیا در قرآن اومده که نماز 4 رکعت نماز ظهر 4 از 4 8 تا داره 4 تا داره 8 تا سجود داره این الفاظ در قرآن اومده اومده اگر سنت نبود ما میتونیم نماز درست بکنیم درست واجباتمون رو ایفا بکنیم نمیتونستیم پس همانطور طور که قرآن حذف شده، بیانش و شرحش هم باید حذف بشه. این تعهدی هست که خدا بر خودش داده. به خاطر همینی که شخصی مثل بخاری میاد یک میلیون حدیث حذف میکنه. شخصی مثل امام احمد میاد یک میلیون حدیث حذف میکنه. اشخاص عجیبی بودن. یک حرف تجربه‌ای رو عقب نمیگردن. همون طور قشنیدن غیر ممکنه که اشتباه بکنن. اگر اشتباه بکنن، این رب ان ربک لبالمرفاد. خداوند اونا میرن و میکنه می کنه یک روایت ده نفر دیگر هم نقل میکنن ما میگیم اضافات کنارا هم میذاری میبینیم که بله این یک نفری که اشتباه کرده با خاطر این بوده بقیه درست گفتن خداغن دین و کرده اگر صحیح بخاری داریم صحیح مسلم رو داریم فکر نکنید فقط احادیث صحیح بخاری مثلا بل فاس انما و بالنیات و نمیدونه فلان فقط از این سید. یک طریق بخاری اومده نه همین حدیثی که در بخاری داریم شاید ده تا کتابهای دیگر هم داشته باشی که مثل اون حدیث رو روایت کرده باشن سنان ابو ابوداود داریم سنن ابن ماجد داریم سنن ترمذی داریم مسند احمد داریم معاجم داریم موادع طبریه یک صغیر و کبیر و البته بلک کتاب‌های حدیث مسند زیاد داریم با سند با مدرک حدثنا فلان عن فلان عن فلان فلان شخص فلان شخص من نقل کرده فحدیث با اسناده دین من, دین من نیست خدا این اشخاص این علمو را گزاشته که ایدیر بر ایمون حبز بکنن قادر دین ایمون را بدونیم زهده قیمنام تموم شد غفتونم دیگر نمی فهم دیگر و آخر دعوان الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و عالی محمد